اللهم همون خیلی ما های چه میاند مشتری برحم نادرحمنی خاموش حض شد بحثی که آیین و حسولین ما از رادشیه طبعا لحل سنه اینجا مخصص دردن تو بحث آن مخواست راجع به فحث از مخصص قبل از تمسک به آن یعنی به عبارت دیگه بحث مطرح شده اصلا در کتب احل سنه که آن یا تمسک به آن قبل از سخته در مخصص جائز هست یا یا به عبارت ساده تاری. چون اصابت رو عموم به اصلاح و اصول لحظی اصول لحظی به نفس خجه کن نصد اصابت رو حقیق. خب ما در اساس رو حقیقه میکنه بین بدون اینکه از مجاز و قرینه فهض کنیم این سوال اینه که آیا اصابت رو حموم هم همینطوره ما اگر یک عموم در کتاب رو سنت با اجراع اصابت عموم. حجت برای ما تمام هم. چون حسول لحظی خودشون حجت دو حجت و امارات هم و با تمام شدن حجت یه میادی به فحث نداره این بحثی که در مسادر رحل سنت مطرح شده چون چند روز تردیب شده بزاره کاری پس در حقیقه نقطه بحث روشن شد اینه که ما با داشتن اصافر اموم نیازی به فحث نداریم فحث از مخطره شبیه اساطر حقیقه با درستان اساطر حقیقه هم از مجاز نمی کنیم فراسو و اگر کسی قارم هست که این با اون میکنه کنن نقطه فرم چیه؟ چه فرمی هست و اساطر با اساطر حقیقه؟ چرا در یکی فرمس میخواد؟ در یکی فرمس میخواد؟ این طرح مسئله در مواحظه یا اگر با خیلی ربتش به همون سلسله در مواحظه این در بیان این است که در چه رتوه ایمان تمثل به اصابتون قبل از فرس یا بعد از فرس باید باشه و عرض شد که در کلمات علمای شیعه خب این وحث خواهی نخواهی مثل بلیه مواحظه اصولی به کتب شیعه هم سرایت کرد اصل وحث اونا مفرد کردن سرایت لیکن چون در خب اصول متختب شیعه که حضور به نزید که ساده شست هفتاد سال میشه بحثی رو در اصول عملیه مضموم شکر رساره اگر ذهن باراتون باشه که اصول عملیه نمیشه الا بعد الفحث لذا این بحث آمد بین شیعه وقتی این دو بحث با هم بگه مقایسته کردن یه بحث دیگر ای این شد راست که مضموم داری اینو دیگران به این بحث پردستن با اونی که چه فرقی بین این فرق در اینجا در رسول لفظیه با اون فرق در رسول عملیه همه هست فرق کنم مثلا علمای اهل سنت مسائل رسول عملیه مثل ما تنقیه نکردن مثلا بعد شیخ مصادی این بحثو من نایدن در کتبه هستیم هستا من خواهدن من با عنوان مستقله با عنوان مستقل در مسائل را آمنه نایدن اما توی ما هست به اصول عملیه بهش تمسط نمیشه الا بعد الفرس توی این بحث آن هم گفتن حسول عرضی بهش تمسط نمیشه نه خوزه از آدم هم الا بعد الفرس اینی که مرموم نایمی به با فاقند زاره کفایه گفتن به این که یک جا فرس از مخصدیه اون توی حسول عملیه یک جا بحث از مانع این در این بحث آن بخواست این فوجیه که اینای کرد مرموم این رو پس سلسل مرحوم استاد اندستان است. ما بحث رو کتاب محاضر قرار وارد این بحث تاریخی نشدن اصلا وارد این قسمت نشدن که سلمی چی گفتن اصلا مثلاً چی بوده از کجا این مشکل پیدا شد وارد این بحث نشدن اما نتیجگیری کردند که نه اینطور نیست این دو تا در هر دو مقام به یک معناست هم در رسول لطنیه هم در اصول عملیه من چون دسته رو دیگه مطالب توضیح دادن دیگه نگاه دیگه یه فکره اینجا بخواییم باز توضیح جدید بگیم کنم که اون وقت ایشان در طرف کلامشون یک مطلبی رو فهمدن که من اونجا متعرضش بشیم که آخر کلامشان بعد از اینکه این به وقتی که میخواد مطلب رو تمام بکنن در همین جلد پنجون صفحه بیشه پنجون خلاصه ای که فرمودن اینه الهانا قد استطعنا النصر الهان به النقطه یعنی او لا فرقه بین الفرسی موارد اصول لحظیه و الفرسی موارد اصول لحمنیه علاقه این خود مطلب ایشان این منوری توضیح میخواد یعنی به اون حاصل توضیحش اینه که بیشه ما خواهد این فحض در هر دو یکی درسته اینکه در فحض در هر دو یکی جای شکلش یک نکته رو که با توضیح داد اینه که چرا تو بحثه پس این تقراره مثلا بحث اینجا با اون بحث تقرار چه نقطه ای در اون بحث فحض در اصول عملی هست که اینجا نبارد باشه نیست من توضیحش ارز یک نکته در اونجا هست که در اینجا مطرح نشدن یعنی این که دو تا مسئله قرار داده شده به لحاظ فحصیه کیه همون نکتهش اینه که در اصول عملیت اصول عملی دو سنیست داریم اونایی که در شباهات حکمیه جاری میشن اونایی که در شباهات موضوعیه در شباهات حکمیه فحص میخواد همون در شباهات موضوعیه فحص میخواد مثلا شما دیروز دیروزه زنده بود اموزم اصطفا بوده شکنیم فحض نمی کنیم مرد نمی کسی گفت نکنیم در شبازه موضوعی فحض نمیخواد در شبازه حکمیه میخواد. این فارق بین این دو مسئله پس فحض در هر دو مسئله یکیه کلان توی بیش از نکته این که ما چرا تو بحث اصول عمله بحث بحث و رو مفر کردیم حالا غیر دلیلی بر یک نکته اساسیش اینه که در اونجا آقایون قادر تقسیم شدن در شباهاس موضوعی گفتن فرض نمیخوام در شباهاس حکمیه میخواهم و چون توضیح گذشت از شبا هم بعد از موارد گفتن میخواهم مثل اینکه شک میکنه آیا سر سالوختیش لازم بر معامله جاریه نداره میگه فقط تو آشپزونه و تو ساوات و انبار نگاه میکنه چیزی زیادی از اون فقه میکنه خب شک می کنه که با مثلا امسال ازاده برمعونه در ازاده همان یا ممکنه بیس پنی ازاده باشه اینو فحص می کنه کدو بکی خب می توانه اونجا بیدر ازاده هم موسلم مثلا ازاده هم اساطی برای جاربیشه یا اساطی برمعونه مدیقتن من وجود المعونه هل تمتن من اولاده خب یه علم برمعونه ازاده کانه یه علم به وجودش و ازاده بقا ازاده کانه یه شک رو می یا اگر يا یا يا اگر يقين داره که معونه رو این انباری گذاشته رو تعویضیشون شک میکنه تموم شده باشه که به نظر نگاه این چه احساب بودا بحثه بالاخره یا احساب جا میشه اساسا اساس نه یکی از این اصوله، اصول اصول مواجهه جایی میشه یعنی اصول مو تخصصی یه چیزی به قصد نداره معذرت گا همون این توضیحاتی در این بحثا بوداش من نمی‌خوام تکامل باشه پس یک مطلب این از که آیا این مسئله با اون مسئله اصول عملیه فرق داره یا نه؟ بعد پر کرده. اونجوری یه نکته داره اینجا نداره. اون نکته اینه در شوابط موضوعیه، فصل نمیخواد. البته ما با استاد بحثی هم جا در خب این درستی موضوعی نداره. چون یکی از اقسام در اون بحث شکل در رابطه آوردن بود. نه در, در خود، در خود که به اصول در ضمن در در که به اصول نمیشه بعد امکانات وجود داشت اون دو قسمتش کردن گفتن شکل از مقتضی و مانه بعد از قسمت مانعش رو شکی در موضوعات اومد خب میدونم بحثش نیست اینجاست بحثش نیست این بحث اینجا توی اصول درزی بحث موضوعات نیست یعنی این دو تا با هم مقابله نمیکنن اشتباه میکنیم بله یعنی این دو تا با اون یه بحثی دیگریه موضوعات مثلا بحث یعنی بحث در سمت از مخصص فقط توی شواهد حکمیه اینجا بحث نمی‌شه اشتباهی حالا اشتباهی یعنی ما که این وقت خوب دقت بکنیم آیا نوس اهل سنت چون مثل ما بحث نکرده نه، اشکال ناتین اهل سنت چون بحث نوردن چون اونا این ترکیب ما با این در حقیقت این جواب کفایی و مرحوم ناغیمی این بعد آمدن مثل شیخ انصاری که بحث فرث تو توی شبار توی اصول عملیه همورده این بحث هم تو توی اصول لطبیه بود تو نوازه الفاظ بود اینا بحث کنید دو بایم چقدر دارن اصلا این نحوه بحث و علمان سننی ها نکردن این نحوه بحث و مقرح نکردن اون که اینجا مطرح کردن اهل سنن فرق بین اساس را حقیق و اساس الاموم اون را مطرح کردن که اتصالاتا آینه ما باز اینو مطرح نکرده اونی که اصل بحث و عطر به از میکنم همیشه تاریخ مطمئن رو رو نه قایتا جاری میدونم اصول رو اصلا اونا اصول رو تقریبا دازار انسان حس میکنه و امارات اماراست میدونن مختصر سوچ و باسه افت میگه یعنی اصافت براره باشی خبر میکنه یا استثال دقیق میکنم اینجور بحث ما رو من میخوام توضیح خدمتتون عرض میکنم و نظام ما به جای م... چند سرخه ای که آرکوی با توی مقدمه آوردم ما چون معتقدیم به جای بحث اینجوری بهترین راه این است با اون واقعیت های موجود بحث بشه. این دو بحث، بحث اول فرق بین اساطر حیغه با اساطر امور. بحث دوم لزوم دو فقه دو اصول اصول عملیه، لزوم فقه در اصول فقه این دو با هم این بحث دوم دو ما داریم در اینجا اهل سنت لاغ تو اینجا مطرح نکردن. اون بحث اول اهل سنت دارن این کتاب های متمنتشر ما مطرح نکردند اما ممکن استم ضوا ما با قدیم مفره کردهشن اینایی کل میثابق کوی استادمون یا ناهیم. اینا مطرح نکردن این بحث باز اینا مطرح نکردن. این خلاصه و اما اینکه این, این فصل در هر دو یکی هر هم همینه راست این مطلب ایشان درست. و اوسولاً من توضیح دادم این است که در جمع فقهی که در اسلام پیدا شده مطلقا تنس میکنن این که اهل سنت در اطلاعیقه رو به دون فرد از مجاز جاری نکنم در فقه این طور رو فعلا اسلامی به طور کلیاره فقه شیعه باشه فقه سرمی باشه یه پیچیدگی کرده که پیچیدگی آرزی هستن بنا کتاب مبین بود بیان بود بیان ناب بیان بود اما خب این پیچیدگی در طول سالیش پیدا شد حالا چه عواملی داره چه راهی باید انجام بدیم این خودش یک بحث دیگریه این پیچیدگی منشأ شده که اصولاً در فقه علما به عمومات به اطلاعات به حتی به ظواهر الفاظ تمسک پیدا الا با فهم از معارض و فهم از مخصص و فهم از مقید و فهم از مجاز و تمام این موارد فهم این پیش آمده این انصافش پیدا شده و اصولا خوب قصد فار فارد اساسی در شده اسلامی بین فقیه و آمی همینه چون عوام قرآن می کنن چه فحیم می کنن عوام می بینن اینا اگر می گفتن یکی تیب اطلاقات یا همون کتاب مراجعه کنه بدون مراجعه از نه این فحیم نیست این آمی عوام قبول آقود می بینن چه فحیم می این که آیا مثلا به احساس جایز هست یا جایز نیست، این شانه فقیه بود. ولی از یواش یواش این نکته افتاد و این قلبهای جدید که حالا پنهان کردیم. کی نام دادند؟ می‌دانم شما اگر بدون فس مراجعه کردین فقیه نیستین، مشکل دیگری. اصلاً معنا اشتغال فس فرق بین اشتغال مشتهد با آمی در همینه. آمی اجازه آیال می‌بینیم که کسی مطمئن می‌گردمون اندیشیده. اون اینکه مثلاً تامين اصولات ا مسالمات در عرب خب برای انسان عربی که در مفهومه شده برای فارسی ترجمه میخواد برای انسان عربی این راحت و بعدها آمد عنوان یک بقول روزیا رکیزه که اساس در اشتهاد قرار گرفت و در این بحث هم فرقی بین اصول لحظی احسان و اصول لحظی ندرو حتى اساطر حیره در عبارت نفاصل محصول از اصلا تصریح میکنه ما فعلا در عدله شرعی اصلا اساس الهیغام جاری میکنیم الا بعد الف این نیست که اساس الهیغه رو جاری بکنیم اساس العموم جاری نکنیم تمام اینا فرض میخوام اسباب المنفرد و تازه از این من من اضافه کردم گوی ما فرض میکنیم بعد از چند اینا که عموم نداریم نه اینکه بخوایم فرض در مخصص رو اصلا عمومی مشترکی لذا این نتایج فقط این نیست که اصلا تحت از مخصص باشه. فقط معارضیت باشه. بله، فرس باید بکنیم. هر چی که مربوط میشه به حکم شاره، خود دقت می‌فرمایید؟ نه موضوعات. هر چی که مربوط میشه به حکم شاره، باید فرس بکنیم. و البته یک نکته اوغلایی داره، خیر ازی. و این نکته اوغلایی مورد امضای شاره اگر قرار گرفته. اون دو که در مرحله ای که ما استعفا هن بچون می‌کنند تنجدز، حالا بچون می‌کنند تنجدز، تنجدز وصول و مکرر، شد. در قرآنی کهیم از مرحله تنجز تبدیل شده به بلوغ، لعنت را بیهی و من بلع، من بلع، این تنجدز، حالا ما وصول فوق در قرآن بلوغه تو این مرحله بلوغ، این مرحله بلوغ و تغییر با آن، لعنت بیهی و من بلع. تو این مرحله بلوغ همز کردیم این تماما بلوغ وظیفه شاره نیست تماما هم وظیفه مکلف نیست من تو اجازش از نصفش رو شاره انجام میده مغنن انجام میده نصفش رو هم مکلف انجام میده برای مرحله تن انجام اون نصفی که شاره انجام میده اسمش انضار کتب ارسال رسوله باز به تعبیر خود قرآنی انضار اسمش انضاره و لينذرو قومهم یعنی اسمش انذار یعنی باید بیان علوم یاد بگیرن برن یاد بدن و اصطلاحا ما امروز در دنیای روز میم رسانگی البته در حد هر همون انذار همون ابلاغ همون بیاناله یه مرحله مکلفواد انجام بده و اون مرحله ای که از عادله نگاه بکنه شواهد نگاه بکنه تو خونش میشینه که بیان ازش در گوشش بگن این نیست اون کار رو که مکلف انجام میده اسمش فهده پس در مرتبه تنجد یک مرتبه کار مغننه رسانه ای کردن و انظار یه مرتبه هم کار مکلفه و اون فهده و همس کردیم نقطه اصاسی هم حصول این دو نفر به یک نقطه است که اسمش باشی معرضیه یعنی مغنن باید بیاد تا حد معرضیت مکلف هم باید بیاید تا حد معرضیت اگه عمل شاهد معارضیت پیدا نکنه دیگه معذوره. پس فر چه در اینجا چه در اونجا یکیه چه در اصول لفظی چه در اصول عملی هیچ فرق نمیکنه. فرقی با هم دیگه ماهیت فص نداره. بله ما تو بحث اصول عملی این نکته رو گفتم چون در موضوعات اصولی که از شواهد موضوعیه صحتم، الان دیگه بیانم روشن شد. چون در شواهد موضوعیه معارضیه محرم نیست. تو در شباهات موضوعی اصلا معرضیتی مطرح بود وقتی معرضیتی مطرح نبود گل فرزم مطرح نبود چون از نازه کنجا فرز اما فرزی که در شباهات و حقیمی یکیه ماید شکلیه اون هم به این ترتیبه حالا من ترتیبشی خدمت رو نعرض بکنم به این ترتیبه ما فهم میکنیم به اقداری که به انصاله لازم که توضیحش ازشم برخونیم بعد از فرزی یا د یا نمی حالا ما نکات فرق بین خود اون واقعا اون دلیل پیدا کردیم می بحث برس با همون احمد اگر پیدا نکردیم آیا معتقد هسته در زیادشون همشوندن. اون بحث معروف اگر حالت سابقه داره استثاب می خدا خدای خوبی قدس الله این استثاب رو جادی نمی حرف کلی اخباری ها موسر رنگی که می جاری نیست اونا اصلا نقطه اختلاف شدیدشون با اصولی ها در استصحاب حکم کلیه خود این حقیقت استصحاب این استصحاب جاری نیست اصلا ما با آیین و صفه استاد طرح دین که ایرانی دیگه اصلا ما در طریقه شاد دیگه است خب اگر استصحاب جاری ندونستیم بی اینجا نقطه خاصی نیست بعد از این مبدل رد بشید اونی که رو جاری میدونن اونا پس به همون استثنا عمل مونه اون مثال معروف خانمی که بعد از ایام حیضش دم شده اما حس نکرده اونو که استثاب جور نمی کنه استصابا حرمت بر نمی این راه اولین ما که استثاب جور نمی کنیم خیلی نهایتا به استصاب جور نمی کنیم برمیگردیم به اصول بعد و من قراران عرض کردم چون مهمه در شبوहात و حکمی کلیه تنها اصلی که اثبات و حکم میکنه یعنی اصل تنزیلی منحسب در استثاظه اما در شباز موضوعی اصل تنزیلی زیاد داریم مثل قاضی سوب و مسلم و قادر ید قاضی قادر قاضی تجاوز مثلا اقرار شخص داخلی اقرار منمنه کشی هم قباری زیاده اون بشه بشه پیش مدکنه همه همه بعد که رسیدیم به مرحله بعد از اصول تنزیلی یعنی بعد از مثل استثاظه همش او در اونجا قاعده احیان این است که اگر شک در تکلیف باشه برائت میشه بشه یعنی اگر شک در ثبوت تکلیف باشه برائت جرم اگر شک در ثبوت تکلیف باشه خوب اگر اجتیاذ ممکن باشه یا اجتیاذ نمیشه یا ممکن باشه اسباب تکلیف این خلاصه ای اجتهاد عمل اشراق ختم میشه به پس یک فقه بعد فقه در درجه اول اگر حالت سابق داشته استصحاب جاری میشه اگر استصحاب نداد حالت سابق یا استصحاب را حجت نکردی من میگم به اصول درجه دوم شک در ثبوت تکلیف براءت جاری میشه شک در ثبوت تکلیف هم ثبوت تکلیف محل اشتباه یا محل واقع تکلیف یا اختیار این کل عملی اشراط است این تقسیم بندی چون شواهد شباهاتو بکمیه میگن تو شباهات موضوعیه این تقسیم بده میگن نقطه اختلاف ما اول رو استثاب بود با این محارب تقسیم میشه نقطه دوم آنی میگنه اگر شکل در سعود تقریف بود اصافت البراه جاری میشه و مراد از اصافت برای شاره مثلا حکم کرده یا قوهلا حکم میکنن که شما بنا بگذار که حکمی نیست چون نمیدانی نیست ما از کردیم ما چین اصلی نداریم ما منکر اساسو برای اصلی. ما مواطقی که یک بنای اغلاست اصلی نیستیم این بنای اغلا شده که اگر حکمی ثابت شد نشد شما فهض کردیم به نتیجه نرسیدی پس این حکم منجز نیست این بنای اغلاست اصلی نیست قاعده گذاشتن. ممکن بود بنا بزن که منجز هست چیدیم این این حکم اگر منجز نشد احکام جزایی بار نمیشه چون موضوع حکم منجزه چون این بحث چند برز تکرار کردید یه تکرار نمیم این راجع به پس به نظر ما اینجا هم اصل نداریم در این اصل بله اگر شک در صحوط تکلیف شد در اینجا مختزای قاعده احتیاط هست لیکن اینجا اصله این یکی اصل جهل یا حساب در محل کلام ده اصل می دونه؟ ده, ده که در محل خوده اگر شکل در صغوز تکریم شد این اصله یعنی چی؟ یعنی میاد تصرف میکنه شما الان در رخ این شکل میکنه نماز خوندی یا نخوندی میاد میگه شما که جهل دارین یا مثلا در شواز حکمه شما که جهل رو این جهل بنام میکنه اتیان اون رو این اصل. بله اگر شارع مقدس هم آمد گفت احتمال منجزه اینم اصله اگر شارع بود اگر پس اون بنا گذاشتن در اصاف علم اجمالی تنجیز کنن اونم اصله پس براءت اصلی لکن هیچ کدومه از اینها حکم رو به عنوان نق یا اثبات نمی و عنوان مجهول مجهولیه یا معلومیه یا اطراف علم اجمالی بیره پس از حک میکنه به نفی حک و استثاب حک میکنه به سبوت بود اون دوتا هم ثابت نیستن این خلاصه بحث در اینجا پس اینه که مرمومه استادتان فحث فهم در اصول عملیه و اصول لفظیه یکی در حقیقت باید اینجور که ما یک فحث بیشتر نداریم اگر در ف... بعد از فحث به دلیل رسیدیم خب به دلیل نرسیدیم؟ به این ترتیبی که آزم گفتن یا اصول عملیت به تحب یا تفصیل قائلین در بحث نادوشکرتی جاری است از نادوشکران رو اصول نیست بنای اوغلا و تیری این خلاصه ای این بحثی در شد قائل به عدم فصل داری بینم اهل سنت میگه به یکیشون نسبت داده شده مثل اساسه حقیقی را که بعد همشون ادعا کردن که نه اصلا تصریح کردن که فرق بین عامی و مشعل همینه عامی فصل نمی کنه مشعل علیثار بحث راجی به صحه عامی مشکل ما داریم یک معندی ان شاء الله بعد. چون بنا, و بنا و فرمون... نه دیگه بنای اوقا گشا هستند، سیر گوزشتن، تا قا قاعده بزشن. نه بز... ببینید اصل همیشه به اصطلاح من از کردن، روز معقول سانوی به اصطلاح اصولیه، معقول سانوی. معقول سانوی فایدهش اینه که باز رو جهل شما انصاف بکنه. اینجا نمیاد رو جرم یا هر حکمی که به مکلف نرسه منجز نیست وصول شرط تنجز هر حکمی هم که منجز نشد موضوع جذا نمیشه کیفر برای شامل نمیشه نه نرسته، یعنی دست او در اختیارش رو در معرضیت بره و به او نرسه. یا ندانه به این رو بنا گذه نه اینکه آلی اصلا بناشون شون بید. این بنای اونا هست ممکنن بگه اول و حکم به شما نرزیده منجز است این هم ممکنه او ممکنه. این یک چیز یعنی اصلی قرار ندادن یک تنظیلی نکردن چون بالاخره در اصل ما با یک جعل بکنیم یک تنظیلی بکنیم جعلی نکردن برنامه این گذاشتن که این حکم منجز نیست یعنی برای سهولت برای کذا برنامه گذاشتن نه این که یک تنظیلی باشه. و این برنامه و این قرار و این جلسه و این اتفاق رو ما اصولاً حتی در اون فقر هم جاری می‌دیدیم که توضیحش اش حالا برای احترام مروم استاد صریعت ایشون به قول خودشون چند وقت نرشته ان از معروف و مشهور بین الا اثار. مسئله مساله اساساً در اصول اهل سنت مطرح شده و مفصل انزارن مفصلان مفسران مطرح شده. ایشون قرارون بین اصحاب بحث بین اصحاب باشه بعد ایشون وجوهی رو کردنی خب یکی این که اگر فرزانه زدن به مراد پیدا خیلی واضح هم خود ایشان نه همه همه ما از ایشون مبدناشینه هم ما مبنا معکدی ایشون بقول خودشون جواب ندیدن آن اول مراجعه به من میگم خب. واضح بحثی یکی ایشون خودمون این بحث ما به ندره به چند بار روزین ان این بحث رو توی بحث حجورات که معروفه شیخ سر نه نوال حجزه در بحث حجورات یه بحث بسیار معروفی این اصولین متأخر ما که در حقیقت در اصول متقدم هم بود اما به این تصویری محدود اون که وجه حجیت زواهر کلام چیه مثلا میگن آبیار بهشون معنا رو می‌ده یعنی وجهش چیه این بحثیه که امروز چلوشون مهمونتی و همین اساس مطرح شد این وجه حجیت دو سه هست یکی ایش نسبتا نسبتاً مشهورم هست اینی که ما از لفظ زن به مراد شخص خیزانون داریم زن به مراد این زن حجتی این, این مبنی این ورشین یه مبنی هم اینه که نه ما دنبال زن نیستیم دنبال میثاق اوحلایی هستیم ما کاری به زن نداریم ما زن به داره شما وقتی گفت برا آب بیار بنای اوحلا در تفهیم و تفهم چون دو طرفه چه من بخوام بفهمم چه بخوام بفهمونم و نظام ما کرارمه از کرده که وض یک حدیدی اجتماعی است اگر در حدی نرستی که تفهم و تفهم بشیم وض نیست لغت نیست اصلا نقطه وض باد اجتماعی باشه یعنی تفهیم و تفهم دو طرف قطعیه و ما معیار در اینه مخواد زن پیدا بشه مخواد نشه و نظام اگر اساطر عمومی از به اقلالایی ما سببون مخواد زن مورد بشه مخوا ما بین از باز مراضیه بکنیم پس این وچه اول من ندیده محالای تمامی مجور رو در کلمات عامه همه کلماتش شده باید وچه ثانی که خطابات کتاب سنت خاص مشافیین هست و برای غیر مشافیین نمیشه الا با اجرافت مثلا یه مثلی و بعدم خود ایشون که هم به نظر اصل استضالی در کلمات نعمده و هم واضح نیست دیگه خیلی من مخربز اونی که ایشان داده جواب به سوم راه سوم که خیلی ایشان در اینجا رو این دادن و صحبت کردن و مثل مرمونا این بحث علم اجمالی این است هر کسی که متصدیه اسم باز میشه میدونه که عموات کتاب سنت حتی من از کدم حقایق لب ظاهر در یک معناست این من دیدم اخیراً یک کسی از داشته که مثلا در اسلام بوده که زنها مثلا سیاحت و جهانگردی بودم چون در قرآن داره سایه ها نماره این باشه از در سوری تحریم هست و خدا نسا مؤمنات آخه تایبا قانستات الان قال سایه ها سایه هم بود سیاحت که ما میگیم این مراد بشون مهاجرات این نهی که مراد جهانگردی در اینجا مراد در از سیاحت در اینجا خانم های هستن که با شوهرش تنها مسلمان شدن در اول که اسلام به اصطاق قدرت نداشت اینا تکلیف داشتن به هجرت ا این هجرت منش اینه. که از اون روستایی کردن کردن که هستن منطقیهی که همون شکن بعد این که رو انجام بدن هجرت بکنن به طرف مدینه قدار اسلام. که این هجرت هم و در بعض از راست هم آموده که اگر اصلا امام جماعی دو نفر بودن هم اقدمهم بود بعد از متاعطشیدستانی که طول عمر ایشون باشه باز کاری کوپاها هجرت که یه ران دادون اسلام قدرت پیدا کرده دلیلش دو اینه که ارزمان هجرتا به پروری علم در وجود هرکس بوده مثلا ببینید این از راهی از شاهها که مراد مهاجراته یعنی ملتای خودشون حرکت کردن از مدینه که اسلام ها آمدن در روایت‌ها اینکه بعد از تک و مکشون اسلام یه عظمت پیدا کرد یه هجرت داره اجازه بدید این یه ویژگی از تاریخ عادیه چون اسلام بردر فیضا کرده اون چونستم راحت از, از خودشون انجام میدم این سائرهاد مورد اونه نمونه که درمیشون الانی که که ما پس ما الان یک علم اجمالی داریم طبق اید علم اجمالی ما باید تحصیل کنیم برده اون وقت این اصل مطلب. خب مطلب درسته اینکه ما علم اجمالی داریم بحث نیم این نمال کلام در یک نکته دیگر یعنی آرکولی خیلی مفصل نمیشتن اینجا رو خیلی مفصل کنید در صفحه بیشتر نمیشتن طولانه متعرس شدن بعد بله بکنید بله. علم اجمالی الان صفحه 254 ساعت 269 خیلی طولانی در صفحه بله بکنید در صفحه اجمالید توی بحث علم الهی ما اصلا معلوم نهایی در مطلب مخالفت کردن با معلوم نهایی به ما به دست که من برای اینکه مباحثی خداوی مصالحه کنم چه لازم می خوام بگیم چی میشه و اون توضیحات که از اینه که مطلب صادر بشه. راجبی این مطلب علم اجمالی کیشون در اینجا دارن. خب یه ایراد هست، یعنی دو طرف ایراد داره، من یک طرف. یه ایراد هست که شما الان در دنیای شیعه از طرف مسئله دنیای شیعه‌ان. یک ایراض تصینی که شما در دنیای شیعه یک فقط مشترک تعقیض و مقاصد صد ساله همین کتاب وسایل و کتب اربعه و اینا رو دارم جواهر هم کتاب‌هایی که مصالحه مراجعه میکنه، و اگر دلیل پیدا نکرد مخصصش داره نکرد اساسی در استصحاب جایی می‌کنه اگر مخصصش باشه خب با اینکه ما می‌گیم صرفاً این علم اجمالی ممکن است اون روایت یا دلیل دقیق اینطور مشهور شده پس اون دایره علم اجمالی ما منحصر نمیشه به این کتبه چرا آنفقه های ما فقط در همین کتب ترسیم؟ نمیشه به این بله ایشون هم باید جواب بذار که این علم اجمالی منحل میشه ببینید ده سال من چون امروزیگه نمیرسیم فردا این بحث بخونید شما بینیده این راه درسته یکی میگه علم اجمالی منحل نمیشه یکی میگه میشه به همین مقدار کافیه اصلا من همیشه عرض کردم مثلا روش رو قبل از اینکه نتیجیه ما رو ریشو بحثرس دیگه حالا این آقا میگه منحل نمیشه ما با تو کتاب غیر مشهور نگاه بکنم که تو اهل سنت هم نگاه بکنه مثلا به آقا مراجعه هر جا که محتمل باشه اون آقا میگه نه منحل میشه کافیه آیا همین مقدار یکی میگه منحل میشه سکی دیگه منحل نمیشه اصلا ما نیست این بحثو مطرح بکنید در سطح علمیه آقای دیوواله می‌گه اعتباری دانشوری خب این از مصادیق اون که میگه منحل میشه نمی‌دونه میگه نه منحل میشه اون مقداری که ما مقاله منحل میشه اینی مقصود خود واقعاً منظور اون آقا میگه منحل نمیشه آیا واقعا به همین مقدار یعنی با همین مقدار طرح مطلب مطلب تمام میشه این رو چیتو کن همه که ادعای انحلال بشه از خب ادعای این انحلال خیلی واضحه مثل اینونه که ما در پنج فاصله می‌گیریم یک کاسه نشاجه در یه بعد پیدا بکنیم فهمیدی یک کاسه معین این کاسه نشاجه خب اول میگن در حییه علم اجماعیه چون میشه چون یه قضیه متعقنه داشت که یک کاسه نشاجه بود مشکوکات هم که پنج شد اون اون قضیه متعقنه در یک مرت انقراض گذاشت بقیه‌ام مثلا مشکوک اساس برای اساس رو، بشه ترجیحیه در این خلاصه ای انحلال خب در اینجا در حقیقت دو, دو طرف کلماتشون به انحلال و عدم انحلاله معیار چیه ضابطه چیه یه طرف یا شما اگر ما نگاه کردیم به همین کسان مشروعی این مجمالی ما میمونه منحل نمیشه یه طرفش میگه نهایین این مجمالی ما منحل میشه چون ما میدونیم مثلا ده هزار تا گفتون داریم محتملاتی که داریم دیوی سه هزار سا. ما اون ده هزار تا رو بر می تو کتب خودمون می‌بینیم تو مشهوره مشروعه می‌بینیم، پس وقتی پیدا کردیم این علم اجمالی منحل میشه. خب این چه میگاریم از کجا به درمه علم اجمالی منحل میشه یا علم اجمالی منحل نمیشه الان که ما جوابی که داده شده انحلال علم انهلال است. یعنی اشکال شده که این علم ایجمالی درست لکن لازمش اینه که شما در غیر کتاب مشهوره هم فهض بگنید چون علم ایجمالی حاکمه جواب آیان علم ایجمالی به این کتاب مشهور منحل میشه رضا فهض در اونها لازمی این یک اشکال بین علم ایجمالی یه اشکال هم به یه طرف دیگه علم ایجمالی است که دیگه سنوزه سمام شد فرزه انشاءالا خدمت آقای نهست اصلا الله وصلى الله على محمد الرابي